ناگه هم برقی به شورا من زد زن ناشناس روز پنج شنبه هفت دی آمده بود و روز هفت دی سال 1317 روز مرگ استاد است بالاخره زن ناشناس را یافتم با او آشنا شدم سالهای زیادی از روز مرگ استاد می گذارد. نقاشان جوانی از فرنگ برگشت و از مدرسهها ها بیرون آمدند آبش نقاشی هم وسیله نان خوردن شده است عددی طرح آگهی تجارتی میکشند صحنه تئات را می کتب را مصور می کنند، صورت اشخاص را میکشند و کاریکاتور برای روزنامه می سازند. بعضی از شاگردان سابق استاد و بسیار از فرنگ برگشته ها خودشان کوس استادی میزنند نمایشگاه نقاشی ترتیب می دهند. در دانشگاه یک هنرکده باز شد و تدریجاً میتوان گفت که استاد کم کم دارد فراموش میشود. و حالاست که من میتوانم های خود را درباره نقاش هنرمند و انسان بزرگواری که جانش را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کرد منتشر کنم. در سالهای نخستین پس از شهری بر، نوشتن شهر زندگی استاد برای بسیاری ناندانی شده بود، هر هرچه به قلمش میآمد مینوشت. حوادث عجیب از زندگی او نقل کردند. یکی از مقال نویسان حتی گستاخی را به حدی رساند که در نهایت بیشتر در نهایت بیشرمی ادعا می کرد که مدت سه سال با استاد در تبعید مکاتبه داشته و استاد تمام اسرار زندگیش را برای او نقل کرده است. ولی آنچه منتشر شد جز ابتزال چیزی نبود. اما قصه های بی تا دیگر فراموش شد و جا دارد که وقایع مهم زندگی او یا اقلن حوادثی که بر سر او آمد و کوششی که در راه هوشیاری مردم داشته و مراحل فداکاری و گذشت او به گوش ماسرین برسد. من می که چیزی دقیق و صریح از نبرد او با قواه اهریمنی استبداد میدانم اما میکوشم کشم روحیه او را مکنونات قبل البیه او را که بزرگی و دلیری و پاکی و در عین حال معایب او را آشکار می بنمایم به این را میتوانم بگویم که استاد ماکان نقاش بزرگی بود. فقط برای اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم و آزادی کشی مبارزه می کند. او فقط یک هنرمند نبود،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 من هنوز در کنج مدرسه استاد نشستم و هرچه اسم او از زبانها بیشتر می افتد، احترام من به او بیشتر می شود. برای من این مدرسه معبدی است و آغار، وقتی آقا رجب مرده من خودم را متولی این حرم می دانم. الان که دارم این یاداشها را تنظیم می کنم صورتی از استاد که یکی از شاگردانش، پس از مرگ او ساخته در برابرم است. صورت کشیدهی داشت پیشانیش بلند بود. گونه ها برجسته، بینی شکسته، چشم ها درشت و نافذ، ها کمانی، چانه پهن و تهباریک. اینکه شاخه سیاهی میزد و هر وقت خیر به چیزی مینگریست، گویی میخواست با منقاش رگ و پی را از میان گوشت و پوست و استخوان بیرون بکشد. از نگاه او لطیفترین تارهای روح انسانی به ارتعاشت میامد. نگاه میکرد و میدید، آنچه از نظر همه رد میشد، او بیرون میآورد از آثارش پیداست آنچه در طبیعت مردم ایران پنهان است او اوریان مینمود. تصویر را که نقاش از او ساخته با عکسی که از سالهای زندگی او در دست است مقایسه می کنم تمام حالت در لبخندی است که دور لبان او پرپر میزند. خنده آرزی نیست خنده ذاتی است نشانه تلخی زهری زندگانی او و مردم دوربر او را مسموم میکرد این لبخند همیشه دور لبها زیر چشمهای او لانه کرده است نقاش هم سعی کرده که این لبخند را ثبت کند بدون اینکه در خطوط صورت علایم خنده دیده شود اما چقدر فرق است با خنده طبیعی که در عکس برجسته جلوگر شده این لبخند از شادی نیست این لبخند نمیرساند که از زندگی برخوردار باشد این لبخند از فرط تأثر است مثل اینکه استاد میخواست بگوید چه شیرین است چه شیرین میتواند باشد افسوس که ما تلخی را میچشیم با وجود این نقاش جوان استاد را مطابق صدیقه خود جلوهگر ساخته او چیز دیگری دیده او انسان رازدار و آرامی را خواسته است بنمایاند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 از رجاله ها، از پشمنداز از آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خورند، از آنهایی که جز شکم و تن خودشان هدف دیگری در زندگی نداشتند بیزار بود نمی قیافه آنها را تحمل کند ناگهان از محفل آنها برمیخواست و بدون اینکه حتی عذر بیاورد می‌رفت. در این حال با همه دوست و آشنا بود وقتی صفا و پاک دلی احساس می‌کرد، از صمیم قلب شیفته می‌شد. در مهنت آنها شریک بود خودش را میتوانست تا حد آنها پایین آورد و یار مهربان آنها باشد با آنها کمک میکرد و غم آنها را میخورد. خورد هر کس را که به خانه‌اش میآمد میپذیرفت ساعتها وقت گرانبهای خود را با مردم عادی صرف میکرد به طوری که همه خود را از دوستان صمیمی او میدانستند به موقع مقرور و متکبر بود. اگر هزار بار کسی از او دیدن میکرد تا از کسی خوشش نمیآمد تا برای کسی احترام قایل نبود به دیدنش نمیرفت بدون اینکه فخر و کند، کند، اراده خویش را بر همه تحمیل می کرد. زیر بار زور نمیرفت تا دل چیزی را نمییافت دل نمیباخت و دل نمیکند خوش لباس بود و پابند به نظم ترتیب کارگاه او جمع پریشان بود اینطور او را همه میشناختند و همینطور هم نقاش او را ساخته اما زن ناشناس از میزان مقاومت او از خودداری او داستان ها دارد این جنبه زندگی او را این زن باید حکایت کند من این زن را با صفات ناشناس خواهم خواند چون خودش مدعی است که هیچ کس او را تا به حال نشناخته بگذاریم این خودخواهی را داشته باشد آشنای من با او جور غریبی بود غریب به نظر او آمد اما من دقیقا حساب کرده بودم چندین سال روز هفت دی دستور دادم که موزه را تعطیل کنند خودم در دفتر مدرسه مینشستم مراقب بودم که کی این روز تاریخی به دیدن موزه می‌آید. من در این مدرسه فقط نازم هستم مدرسه استاد از آن ادارات دولتی است که سرقفلی دارد همه هموهم مقدار هنگفتی پول ظاهرا صرف تعلیم شاگردان این آموزشگاه می شود. قریب چند میلیون تومان در سیزده سال اخیر یعنی از زمان تپید استاد به کلات در این مدرسه خرج شده و تا به حال 13 هنرمند هنوز فارغ تحصیل نشدند. اما هزار و 1300 نفر لیسانسه هنرهای زیبای فارغ التحصیل این مدرسه در ادارات دولتی از اداره معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پیشه هنر مشغول ردق و فتخ امور هستند. مدیریت این مدرسه مداخل فراوان دارد. هر وزیری که عوض می شود، مدیر مخصوصی ترین مدرسه می بنابراین و برای هر سال اقلا این مدرسه دو مدیر به خود میبیند ولی ده سال است که من نازم هستم. بدیهی است که اختیارات من به حدی است که می‌توانم روز بروز دی هر سال به بحانه ای یک بار به عذر اینکه تالار موزه باید پاکیزه شود، یک بار به اسم اینکه سقف دارد چکه می کند، بار دیگر به بهانه اینکه خودم ناخوش هستم موزه را تعطیل کنم. سه سال است که کسی نیامده. زن ناشناس نیامد، تا روز هفته دی امسال. اکنون 15 سال از روز مرگ استاد می‌گذرد. روز هفتم دی دادم تالار موزه را قفل کنند. خودم در دفتر نشستم. از پنجره اتاقم می توانستم مراجئین را ببینم. ساعت 4 و نیم بعد از ظهر بود. شاگردان داشتن از حیات خارج می شدند. بیشترشان رفته بودند. اتومبیل شیکی دم در آهنی مدرسه نگه داشت. زنی که خود ماشین را می راند از آن پیاده شد. زنی با قد متوسط، موبر و خوشندام وارد حیات شد و به طرف سرسرا رفت. چند قدمی که نزدیک شد، نگاهی پر از تجربه به سرسرا انداخت. معاا راهش رو ادامه داد. از یکی از شاگت ها که از پای پله ها پایین میآد چیزی پرسید. من فم پنجره اتاقم را باز کردم و پرسیدم: خانم چه فرمایشی داشتید؟ دلم تاپ تاپ می کرد به زور خودم را نگه داشتم. حس کردم واقعی که سالها چش به راهش بودم دارد اتفاق میافتد. گویی به خودم مژه می دادم، یافتمش صاحب چشم ها را یافتم. این آن چشمهایی است که استاد مرا عذاب داده اما هنوز خود چشم ها را ندیده بودم. خانم خوشندام از شنیدن صدای من یکه خورد سرش را بالا کرد. نگاهی با چشمهایی که ابدا مرموز و گیرا نبود به من انداخت. خندش مانند آفتاب بهاری که برفهای سرکوه را آب می کند دل آدم را شاد می کرد. اما همین خنده وقتی تکرار می شد آدم حس می کرد ساخته گیست. با لحنی شیرین و معدب و مهربان گفت ببخشید آقا آمده بودم موزه این مدرسه را تماشا کنم میخواستم از همان پنجره جواب سربالایی به نهام روانه کنم چون صدا خیلی عادی و معمولی بود من منازن ناشناس و جور دیگری تصور میکردم اما آهنگ معدب و مهربانش مرا از رو برد به علاوه دو دلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی وامی دارد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 همین که وارد شد من کسی که سالهاست مرا میشناسد، و یا مردمی که همه خلق را دوست و خود می گرم خودمانی گفت آقا فراشتان هم عوض شده است اینجا دیگر من خودم را باختم رنگ از صورتم پرید فوری یقین کردم که این زن دروغی می خندد هر جمله که می گفت پوشت سرشیک خنده بلند شنیده میشد. در عین حال این خنده نمکین و دلنگی است بود